افسانه بناو خالق افسانه و حقیقت سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو جوان در پس ظاهر ساده و بی‌پیرایه افسانه ها جهانی پیچیده از پیام ها و رمز و راز ها است روانی کلام و سادگی و حکمت های مفید از جمله ویژگی های هاست قصد داریم افثانه زیبا از کشورمون براتون نقل کنیم به نام افسانه پهلوان کچل برگرفته از کتاب قصه های آمیانی ایران به گردآوری آقای منوچهر سلیمی امیدواریم از شنیدن این افثانه ایرانی به ذکر بر. در روزگاران خیلی دور زنی بود که به اون مشخیاس میگفتن اون یه پسر داشت که هم لاغر بود و هم ترسو و کچل این پسر همیشه توی خونهشون تا لنگ زور می و هیچ وقت جت نمیکرد از خونه به بیرون بره و برای خودش کاری دست و پا کنه نه یه بیچارش از دست اون خسته شده بود و نمیدونست با این تنبلی پسرش چیکار کنه؟ خلاصه تا اینکه یه روزی تصمیم گرفت با هر کلکی شده پسرش رو از خونه بکشه بیرون و همین کار رو هم کرد و در خونه رو محکم پشت سرش بست پسر هرشه التماس کرد که نه نه نه تو را خودت در باز کن بیان تو نه فایده ای نداشت که نداشت بالاخره پسر مجبور شد بره شهر رو فکری با حال خودش بکنه بعد کچل افسانه ما رفت شهر رو زیر یک درخت جای دنج و آرومی پیدا کرد و راحت و بیخیال گرفت خوابید مگس ها ریختن روی سر کچل اونو وزوزی راه انداختن که بیا و ببین کچل همونطور که خوابیده بود با یه دستش زد تعدادی از مگس ها رو انداخت روی زمین و با دست دیگرش زد تعداد دیگه از مگس ها رو انداخت بعد پیش خودش گفت چیکار کردم آه حجب خدرتی واقعا که من پهلوان دیم، بعد پا شد و روی تنه درخت نوشت من پهلوان پهلوانان هزار تا بکشتم هزار تا بگرفتم هزار تا نیمه کردم و هزار تا فراری دادم بعد هم دوباره گرفت و خوابید حالا بشنوید از دیوی که با پادشاه سهن جنگ داشت و چندبار هم با اون جنگیده بود پادشاه سهند با لشکرش دوستان دیو رو که همه دیو بودن رو کشته بود و عدی از اونا رو هم تارو مار کرده بود و دوباره میخواست با دیو بجنگه دیو از کنار درخت بید رد میشد که دید یه نفر اونجا خوابیده تنه یک درخت رو نگاه کرد دید نوشته هزار تا رو کشتم هزار تا رو بگرفتم هزار تا رو نیمه جان کردم و هزار تا رو فراری دادم اون دیو با خودش گفت ها عجب پهلوونیه چه قدرتی داشته که تو این کارا رو انجام بده این همونی کسیه که من دنبالش میکشتم بعد کچل رو صدا زده گفت پهلوون پهلوون بلند شو بلند شو کچل از خواب بیدار شد اما چشاش رو باز نکرده بود شنید که یه نفر اونو رو صدا میزنه. اونم خودش رو از تک و تا نداخت و باودی تو گلو انداخت و گفت بله کاری داشتی. دیو گفت بلند شو بلند شو بادکار دارم. کچل بلند شد. سینه ای سپر کرد. باودی به قبقب قب انداخت و گفت شیه چرا منو از خواب بیدار کردی؟ هم کار چیه؟ دیو گفت من با پادشاه سهن در حال جنگم و توی این جنگ به پهلوون قدرتمندی مثل تو احتیاج دارم به من کمک میکنی؟ کچل همونطوری که باد تو گلو انداخته بود سیناش رو سپر کرده گفت من اول باید برم از مادرم خدافیسی کنم و برگردم دیو گفت باشه با هم میریم و بعد هر دو به طرف خونه کچل براه افتادن کچل به خونه رسید و زود رفت یواشکی به مادرش گفت نه نه نه تو رو خدا جلوی این دیو به من نگو کچل بگو پهلوان زن مشخیاس هم بود و فوری فهمید جریان چه برای همین با صدای بلند گفت نه نه, نه جان پسر پهلوانم تا حالا کجا بودی ننه؟ کچل جواب داد ننه کار داشتم حالا هم که با این رفیقم برگشتم خونه خیلی گرسنیم مادرش گفت ننه نه، از وقت نهار که گذشته ولی خب یه مختصر غذایی براتون میارم بخوری به بعد رفت از همسایه تا تخم و مر غرض کرد و برای کچل و دیو نیمرو درست کرد نهار که خوردن دیو یک پول به کچل داد و گفت اهلمون فعلا اینو عل حساب بگی تا بعد کچل پول رو گرفت و داد دست مادرش و به دیو گفت من برای جنگ با پادشاه سهند یه اسب خوب و تیزپا لازم دارم دیو هم فورا اسب رو برای کچل آماده کرد اسم اون اسب هم سمند بود کچل چون خیلی ترسو بود و میترسید از اسب بیفته گفت یه تو پارچه و مقداری غیر حاضر کردن غیر رو آب کردن و ریختن روی پارچه بعد پارچه رو محکم به بدن اون و اسب چسبوندن و زیر شکم اسب رد کردن به طوری که کچل محکم روی اسب چسبیده شد برای اینکه وقتی اسب میتازه از روی اون نیفته دیو که از این کار کچل تعجب کرده بود گفت پهلوان این کارا برای چیه ها کچل گفت من همیشه اینجوری به جنگ میرم عادت همه دیو گفت باشه هرجور که درت میخواد به جنگ پادشاه سهند برو و کچل با تعدادی از دیوها برای جنگ با پادشاه سهند به سحره آره کچل وقتی پادشاه سهند و لشکرش رو دید که قطار قطار روی اسبشون نشسته بودن ترس پرش داشت اما به روی خودش نیه در این موقع اسب کچل رم کرد و کچل فریاد زد سمندو بگیرین سمندو بگیرین قلبت منظورش این بود که کسی جلوی اسب رو بگیره نظر بره سر راه اسبی درخت بود کچل از ترس دستش رو دراز کرد تا درخت رو بگیره ولی چون محکم به اسیده شده بود از غذا درخت شد و روی دوش کچل افتاد و کچل با درخت همونطور به طرف قشون پادشاه زهن میرفت دیوها در یه طرف و پادشاه و لشکرش در طرف دیگه کچل رو نگاه میکردن پادشاه که دید کشل با اسب داره میاد و درختی رو هم از ریشه کنده به وحشت افتاد و با خودش گفت آخ خدای من این دیگه چه پهلمون پرقدرتیه اگه دستش به ما برسه جون سالم به در نمیبریم بعد پادشاه به لشکرش دستور عقب نشینی داد با فرار کردن پادشاه و قشونش دیوها شروع کردن به تحسین کشل و گفتن آفرین بر تو پهلوان پرقدرت خوب فراریشون دادی و بعد کچل رو به خونش رسوندم کچل وقتی به خونه رسید هر کاری کرد نتونست پارچه غیری رو که به تنش چسبیده بود بکنه به مادرش گفت یه دیگ آب جوش درست کرد و ریخت روی غیرها و پارچه ها تا اینکه که پارچه ها از تنش جدا شده بعد اومد توی اتاق پیش دیوا و متوجه شد که دیوها تصمیم دارن بقیه پولی رو که قرار بود بهش بدن بالا بکشن به به مادرش گفت نه نه نه نه من هربه بابام رو میخوام و مادرش هم رفت و قداری شکسته ای رو آورد و داد به پسرش کچل هم اونو گذاشت روی زانواشو چون خیلی لاغر و مردنی بود و آب روش ریخته بودن خیلی سردش شده بود و میلرزید در این موقع یکی از دیوها عطسی کرد و با عطسی خودش کچل رو به هوا بلند کرد کچل فریاد زد من دشمنانم را رو با این حربه میکشم. دیوها که سخت ترسیده بودن با خودشون گفتن عجب پلمون پرزوریه. به بعد هر چه پول داشتن به کچل دادن و چند روز بعد هم برای یک کچل افسانه یه ما جشن عروسی مفصلی برگزار کردن و از اون به بعد کار و بار کچل حسابی گرفت و هرکس گرفتاری پیدا میکرد. می سراغ کچل تا اون مشکلش رو حل که شنیدید افسانه ایرانی پهلوان کچل بود برگرفته از کتاب قصه های Amiane به گردآوری منوچهر سریمی ها بر روی زمین در کنار دستها و چشمهایی رخ میدن که واقعیات را لمس میکنند و می‌بینند از افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت صالح پور ویراساز سید فریبرز نوربخش اجرا مهران دوستی صدا بردار الهام حجرفکن کننده زهرا عبدالله زاده افسانه دیگر بدرو